بسم الله الرحمن الرحیم ات ترخیم درس سی و دوم بحث ترخیم هست این سباب جزوه عبوات منادا بودند ترخیم ما هو ترخیم میگه ترخیم چه هست 181 هشتاد ما متا یجوزو ترخیم ال منادا چه زمان ترخیم منادا جایز است چه زمان ترخیم منادا 180 هشتاد ات ترخیمو حذف و آخر المنادا جوازا للتخفیف فتقول یا حارثی ترخیم حارث ترخیم بحث صادیق میگه تاریخیم حذف آخر منادا هست به بخاطر تخفیف فقط. بخاطر چی؟ مانند یا حاری. تو بجایی که بگی یا حاری تو منادای خودت رو میای از آخرش حذف میکنی. به جای یا فاطمه مثلاً میگی یا فاطمه. آ؟ یا حاری تو میگی یا حارو یا یا حاری. یا بالا. میگه ترخیم همون حسف آخر مناده از جوازن خاطر تخفیف مانند یا حاری در ترخیم کردن یا حارث. اذا کان المناده مختوبن به تایتانیس جاز ترخیمه مطلقن علم انکانه او اما غیر علمین در سد و یک مسئله مهم اشاره میکنه میگه زمانی که منادای ما آخرش تایتانیس داشت آخرش چی بود؟ تایتانیس بود از ترخیم کردنش، واطلاقا چه علم باشه چه علم اما اگر در آخرش تایتانیس نباشه، اگر علم نباشه نمیتونید ترخیمش کنی ولی اگر تایتانیس داشت چه علم بود، چه غیر علم میتونی چیکارش کنی؟ ترخیمش کنی، حذف کنی از آخر. مانند یا فاطمه در یا فاطمته، یا فاطمه تو در یا فاطمته تو, تو میای میگی یا فاطمه ترخیمش میکنی، چیکارش میکنی؟ باره. و اذا کان غیر مختومین بها فشار توان یکون علمان غیر مضاف زایدن الى ثلاثت احروف خوب چرا در شماره 181 اینو گفت میگه خودش داره میگه میگه زمانی که آخرش تایتنیس نداشت زمانی که کلمه آخرش تایتنیس مانند یا سعاد یا, یا زینب مثلا آخر اینا تایتنیس نداره میگه زمانی که آخرش تایتنیس نداشت شرطش این است که علم باشد شرطش این است که چی باشد؟ و مضاف هم نباشد و بیشتر از سه حرف داشته باشد با این سه شرط میتونی ترخیمش کنی مثلا سعاد رو میتونی ترخیم کنی چرا؟ چون بیش از سه حرف داره علم هم هست پس اگر میخوایی سعاد رو اسم انسانه بخاي ترخيمش كنیم. میگی: يا سعاء، يا دالوا از آخرش شکل میکنی؟ ترخیمش میکنی. فوائدیم المندوب والمستغاث والمركب تركیب اضافة أو اسناد والنكره وشذ قولهم يا صاح في يا صاحب لأنها نكرتون. در فوائد میگه ممنوع است مندوب ومستغاث و همچنین اون کلمه ای که مرکب اضافی یا مرکب اسنادی هست و همچنین نکره ها این تند چیز ترخیمشون چی ممنوع هست خب اگر یکی گو اومد و گفت و میگه این ترخیم کردن خود عرب ها که به جای یا صاحب میگن یا صاحب صاحب علم نیست نکره هست میگه این یک چیز شازیه این یک چیز چیه؟ بس بجای یا صاحب موغید میگن یا صاح این یک چیزی چیه؟ شاسیه خوب دو الانده في فی الحذف يبقى الاسم دالا على مسماح بدون لبسین ف اندل جاز الحس و امتنع میگه اون چیزی که خیلی اساس هست در بحث حصف کردن در بحث حصف کردن از آخر اون چیزی که اساس هست این است که اسم بعد برون مسمای خودش دلالت بکنه باقی بمونه بدون اینکه با کلمه دیگی پوشیده بشه ما چه زمان مثلا به جای یا حارس میگیم یا هار زمانی کهمون که مسماش که حارسه برون دلالت بکنه برون چیکار بکنه باقی مانده باشه اگر نه باقی نمان دیگه نمیتونیم بیام ترخیمش کنیم نمیتونیم چیکارش کنیم ولی اینجا یه چیزی که مثلا توضیح شد نیاورده بود این هست که خب چه اعرابی بهش چون اینجا آورده بود یا حاری در حالی که اگر ما حارثو صدا بزنیم منادای مفرد معرف است مبنی بر ظمه میشه ما میگیم یا حارثو یا اینجا چه اعرابی بهش میگه ما میتونیم اینجا دو اعرابش بدیم میتونیم همون اعراب منادا رو بهش و میتونیم همون چه اون همون حرف چه حرکتی داشته قبلا همون حرکتو سر جاش باقی بگذاریم. این از بال تارخی